بنده پنجم در رستوران سخف کوتاه و زیر زمینی، صف نهار آهسته به جلو می رفت. اتاق پر بود و سر و صدا گوش آدم را کر می کرد. از پنجره مشبک پیشخان، بخار خورشت با بوی ترش و تند که به بوی زننده جین پیروزی غالب نمی آمد به مشا می رسید. در انتهای اتاق بار کوچکی قرار داشت که سوراخی بیش در دیوار نبود و با ده سنت میشد جین خرید. صدایی پشت سر وینستون آمد که توی آسمان ها میگشتم. می گشتم. برگشت. دوستش ساین بود که در اداره تحقیقات کار میکرد. شاید دوست کلمه ای نبود. این روزها کسی دوست نداشت. رفیق داشت. محل وصف، رفقایی بودند که مصاحبت آنها دلپذیرتر از رفقای دیگر بود سایم لغت شناس بود متخصص زبان جدید در واقع یکی از خبرگان بیشماری بود که یازدهمین این چاپ فرهنگ زبان جدید را گردآوری میکردند موجودی ریز نخش بود ریز نخش تر از وینستون با موی سیاه و چشمان درشت و باد کرده چشمانی غناک و در عین حال تن آلو. وقتی با آدم حرف میزد، انگار چشمانش چهره را میکاوید. گفت میخواستم بپرسم تیغ داری؟ وینستون شتابناک این آدم تقصیر کار گفت تو بگو یک دانه، همه جا را گشتم، دیگر گیر نمی آید. تیغ ریش تراشی موضوع پرسش بود. راستش وینستون دو عدد تیغ مصرف نشده داشت که آنها را احتکار کرده بود. چند ماهی بود که قهطی تیغ بود. هر زمان یک قلم وسیله ضروری بود که مغازه های حزب نمی فراهم آورند گاهی دکمه بود، گاهی نخ مخصوص رفو، زمانی بند کفش و حالا هم تیغ ریش تراشی. جز در بازار آزادگیر نمی آمدند، آن هم دست دکی. به گفتش افزود که شش هفته است که از یک تیغ استفاده می البته راست نمی گفت صفبار دیگر جلو رفت همین که ایستادند برگشت و از نو با سایم رو در رو شد هر کدام سینی فلزی چربی که روی همان بار شده بود از لبه پیشخان برداشتند سایم گفت به دیدن زندانیانی که دیروز حلقاویز شدن رفتی؟ وینستون وابی اعتنائی گفت کار میکردم. گمانم در سینما می بینمش. سایم گفت کجا به کجا؟ چشمان تنه آلودش روی چهره وینستون گشت. انگار می تو را می شناسم، ذهنت را میخوانم خوب می دانم که چرا به دیدن زندانیان سربدار نرفتی. سایم به شیوه اقلانی همرنگ دو آتشه ای بود. با تیب خاطری ناخوشایند و کین از حمله ی هلیکپترها به دهات دشمن حرف می زد. از محاکمه و اعترافات مجرمان اندیشه و اعدامها در سلول های وزارت عشق. گفتگو کردن با او راهی بود برای بیرون آوردن وی از چنان موضوعات و در صورت امکان انداختن او در تار و پود فوت و فنهای زبان جدید که در این باب صاحب نظر بود. فینستون برای پرهیز از کاوش چشمان درشت و سیاه سرش را اندکی به یک سوم و کرد. سای محض یاداوری گفت بدار آویختن جالبی بود. بستن پاها را خراب می کند. دوست دارم لگد انداختن سر بداران را ببینم. و بالاتر از همه در پایان آویختن زبان را که به رنگ آبی روشن است. اینجوری به مزاق من سازگار تر است. رنج بر پیشپن سفید و ملاقه به دست داد زد. لطفا نفر بعدی. وینستون و سایم سینی های خود را از زیر پنجره مشبک رد کردند به درون هر یک به سرعت برق نهار هر روزی ریخته شد خورشت خاکستری مایل به صورتی داخل کاسه فلزی کوچک کلوخی نان، غالبی پنیر، فنجانی قهوه پیروزی بیشیر و یک حبب ساخارین سایم گفت زیر آن اسکرین میزی هست بهتر از سر راه لیوانی جین برداریم جین را در داخل لیوان چینی بی دسته به آنها میدادند از میان اتاق پر جمعیت راهشان را باز کردند و محتویات سینی خود را روی میز خالی کردند در گوشه ای از میز یک نفر کپی خورش بر جانه نهاده بود مایهی کثیف که شبیه استفراغ بود فینستون لیوان جین خود را بلند کرد لحظه ای سبر کرد تا بر اعصابش مسلط شود و انگاه این توفه را لا جرع سر کشید هنگامی که اشک حاصل از خوردن جین را ستورد، ناگهان دریافت که گرسنه است. به بلعیدن خورشت پرداخت. ماجونی بود که تکه های اسفنج مانند صورتی رنگی هم در آن بود. احتمالاً گوشت بودند. تا وقتی کاسه فلزی خود را خالی نکرده بودند، هیچ کدام حرف نزدند. از میز سمت چپ وینستون اندکی پشت سرش کسی داشت تントン و بیوقفه شروور میبافت که بیشباهت به قاتقات اردک نبود و هم همه درون اتاق را میشکافت. وینستون به صدای بلند گفت کار فرهنگ به کجا کشیده است؟ سایم گفت آهسته پیش میرود. روی صفات هستم. شکفتیزه است. اسم زبان جدید که به میان آمد گل از گلش شکفت. کاسش را کنار زد نان را به یک دست و پنیر را به دست دیگر گرفت و سرپیش آورد تا آنکه فریاد بزند سخن بگوید چاپ 11ام چاپ نهایی است زبان را به شکل نهاییش می رسانیم. شکل نهایی برای زمانی است که دیگر هیچ کس به زبانی دیگر حرف نمیزند آن را که تمام کنیم کسانی مثل تو باید از سر یادش بگیرند به جرأت می توانم بگویم که فکر می‌کنی کار اصلی ما اختراع واجه های جدید است ولی ابداً اینطور نیست هر روز ده ها و صدها واژه را خراب می‌کنیم در حال قد کردن پیکره زبان هستیم تو بگو یک واژه هم که پیش از سال 2050 منسوخ شود در چاپ یازدهم نمی آید با اشتهاب نانگاز نان زد و یکی دو لغم داد سپس با هیجانی فاضل آبان دنباله صحبت خود را گرفت چهره ریز نقش و سیاهش جان گرفته، چشمانش حالت تن آلود خود را از دست داده و رؤیایی شده بودند. خراب کردن واژه ها کار قشنگی است. البته زایعه بزرگ و افعال و صفات مربوط می شود. اما صدها اسم هم هست که می توان از شرشان خلاص شد. علاوه بر مترادفات متضادها هم هست. آخر برای واجهی که ضد واجه های دیگر است چه توجیهی وجود دارد؟ هر واژه ضد خود را در بتن دارد به عنوان مثال واژه خوب را در نظر بگیر. اگر واژه مانند خوب داشته باشیم، چه نیازی به واژه مثل بد هست؟ ناخوب عیناً همان کار را می کند. بهتر هم هست، چون دقیقا ضد واژه خوب است و بد این نیست. باز اگر صورت قویتر خوب را بخواهیم، داشتن رشته از واژه گنگ و بی مانند عالی و معرکه و غیر اینها چه مفهومی دارد؟ به اضافه خوب مفید معناست یا به اضافه دو برابر خوب اگر چیز قویتری بخواهیم البته این شکل ها رو به کار میگیریم ولی در صورت نهایی زبان جدید چیز دیگری نخواهد بود در پایان مصتاج خوبی و بدی به کمک شش واژه فلواقع تنها یک واژه صورت میگیرد. وینستون متوجه زیبایی آن نمیشوی پس از لحظه اندیشیدن به گفتش افزود که البته فکر در اصل فکر نونکه بود. به ذکر نام ناظر کبیر اشتیاقی بیروح بر چهره وینستون نشست. با این همه سایم در دم متوجه نبود موجب شوق شد و به لحنی اندوه بار در آمد که فینستون نشانی از ستایش واقعی زبان جدید در تو نیست وقتی هم که آن را مینویسی با زبان عتیق فکر می کنی. بعضی از مقالات تو را که گاه و بیگاه در تایمز می نویسی خاندم بیشکالن اما ترجمند در دلت ترجیح می دهی به زبان عتیق بچسبی با تمام ابهام و بعطهای معنایی بیمصرف آن زیبایی خراب کردن واجه ها را در واج میدانی که زبان جدید در دنیا تنها زبانیست که واژگان آن همه سال کمتر می شود. معلوم است که وینستون این را میدانست دانست. از روی همدلی لبخند زد به خودش اعتماد نداشت که حرف بزند سایم لغمه دیگری از نان تیر رنگ به دهان گذاشت آن را جوید و دنباله صحبت خیش را گرفت مگر متوجه نیستی که تمام هدف زبان جدید تنگ کردن هیتی اندیشه است در پایان جرم اندیشه را امری محال خواهیم ساخت چون واجهی برای بیان آن در میان نخواهد بود هر گونه مفهوم مورد نیاز دقیقا با یک واژه بیان خواهد شد معنای آن کاملاً مشخص شده و تمام معانی فرعی حذف می شود و به دست فراموشی سپرده می شود در چاپ یازدهم خیلی دور از این نکته نیستم اما این روند خیلی بعد از آن که من و تو مرده باشیم ادامه خواهیم هر سال واجه های کمتر و کمتر و دامنه آگاهی همیشه کمی کوچکتر. البته همین الان هم هیچ دلیل یا بحانهی برای ارتکاب اندیشه وجود ندارد. صرفاً یک امر خود انزباتی، مهار واقعیت است. اما در پایان به آن هم نیازی نخواهد بود. زبان که کامل شد، انقلاب کامل خواهد شد. با تیب خاطری عارفانه به گفتش افزود که زبان جدید سوسیانگل است و سوسیانگل زبان جدید. وینستون تا به حال به فکرت خطور کرده که حد ده اکثر تا سال 2050 دیگر کسی گفتگوی کنونی ما را نمیفهمد. وینستون با تردید درآمد که جز و سپس از گفتن باز ایستاد. کماندو بود بگوید جز رنجبران اما خودداری کرد کاملا مطمئن نبود که این گفته ناجور نباشد با این حال سایم منظور او را به فراست دریافت و با بی گفت رنج بران آدم نیستند تا سال دو هزار و شاید هم زودتر معرفت واقعی درباره زبان عتیق از میان رفته است تمام ادبیات گذشته ناپدید شده است آثار چسر، شکسپیر و میلتون و بایرون تنها در واگردون زبان جدید وجود خواهند داشت آن هم نه تنها به شکلی کاملا متفاوت بلکه به شکلی متضاد با آنچه در واقع بوده است. حتی ادبیات حزب هم تغییر خواهد یافت. شعرها هم وقتی مفهوم آزادی منسوخ شده باشد، چگونه می شود شعری مانند آزادی بردگی را داشت؟ حالا هوای اندیشه متفاوت خواهد بود. واقع این که اندیشه با تلقی که از آن داریم وجود نخواهد داشت. همرنگی یعنی نیاندشیدن، بی‌نیازی از اندیشیدن. هم رنگی وینستون با اعتقادی ناگهانی و عمیق اندیشید که یکی از همین روزها سایم تبخیر خواهد شد. زیادی باهوش است. به روشنی کامل می‌بیند و با سراحت بسیار سخن میگوید حزب چون این آدم های را دوست ندارد، یک روز ناپدید می‌شود. از جبینش پیداست.